جن خودخواه نوشته ریچارد داکینز پینوشت های فصل 11 هم میم همتاساز جدید توضیح صفحه 192 اگر مجبور بودم شرط ببندم آن وقت روی یک اصل بنیادی سرمایه‌گذاری می‌کردم و آن این قانون بود که تفاوت میزان بقای هیئت‌های همتا ساز کل حیات را پدید می‌آورد. شرط درباری اینکه حیات هر چه جهان که باشد از طریق ابزارهای داروینی پیدا شده است در مقاله ام داروینیزم جهانی و در فصل آخر ساعت ساز نابینا مفصل شرط داده و توضیح کردم. نشان دادم که همه یه چیزهایی که ممکن است جایگزین داروینیسم معرفی شده باشند در اصل می توانند پیچیدگی سامان یافته ی حیات را به خوبی داروینیسم توضیح دهند این یک نظر کلی است و اینطور نیست که بر اساس واقعیت های بخصوصی باشد که در حیات آشنای ما وجود دارد و به همین دلیل است که از طرف دانشمندان بی این که خود را محدود به لوله‌های های آزمایش داغ یا چکمه های سرد کرده اند مورد انتقاد واقع می منتقدی چنین ایراد می که این بحث فلسفی است و فکر می‌کرد فلسفی بودن تهمت جانانهی است. فلسفی باشد یا نباشد واقعیت این است که نه او و نه هیچ کس دیگر اشکالی در گفته های من نیافته است و اصولا استدلال من گرچه به دنیای واقعی ربطی ندارند ولی می توانند پرتوانتر از بحثایی باشند که بر پایه بررسی های واقعی در موارد خاصی هن. اگر استدلال من درست باشد نکته مهمی را درباره زندگی در هر جای دنیا که باشد به دست میدهند در حالی که پژوهش‌های میدانی و آزمایشگاهی فقط درباره یک نمونه بررسی شده اطلاعات به دست می‌دهد. توضیح میم از قرار معلوم واژه میم به یک میم خوب تبدیل می‌شود. حالا نسبتاً زیاد به کار می‌رود و در سال 1988 در ردیف واژههایی قرار گرفت. که در ویرایش‌های آینده فرهنگ‌های انگلیسی آکسفورد باید آورده شود. این بیشتر مشتاقم می‌کند که تکرار کنم طر‌های من درباره فرهنگ بشری بسیار ناچیز و تقریبا نزدیک به صفر بوده است. آرزوی واقعیم که بزرگیشان را قبول دارم کلا در جهت دیگری هستند. من می‌خواهم برای موجودات همتاساز کمی نادقیق در هر جای دنیا که یافت شوند، نیروی بیپایانی را ادعا کنم. به این دلیل که پایهی هستند برای انتخاب داروینی و اگر در نسلهای متوالی ادامه پیدا کنند با انباشتن تغییرات، سامانه هایی با پیچیدگی های ایجاد می کنند. من بر این باورم که در شرایط مناسب، هم ساسا خود به خود به هم ملتق می شوند. و سامانی را میسازند که آنها را جابجا جا کرده و در جهت ادامه ی کار همتاسازی آنها عمل میکنند. ده فصل اول ژن خودخواه منحصر به یک نوع همتاساز یعنی ژن بود. در فصل آخر که در مورد میم بحث شد من سعی کردم کلیتر از همتاسازها صحبت کنم و نشان دهم ژن تنها عضو این طبقه نیست. مطمئن نیستم آیا در محیط فرهنگی اجتماعی بشر واقعا چیزی وجود داشته باشد که در آن شکلی از داروینیسم برقرار باشد. ولی در هر صورت این سوال در هاشیگ مشغولی های من قرار دارد. اگر خاننده بعد از خواندن فصل 11 کتاب را ببندد و این احساس را داشته باشد که ملکول های ای تنها چیزهایی نیستند که میتوانند پایی تکامل داروینی قرار گیرند، آنگاه میتوان گفت. که آن فصل به مقصود خود رسیده است. هدف من این بود که نوک ژن را قیچی کنم و آن را سر جای خودش بنشانم نه اینکه درباره فرهنگ بشری یک نظریه آنچنانی ارائه کنم. توضیح بعدی در مورد این عبارت می فقط از نظر استعاری بلکه از لحاظ فنی باید مثل خود یک موجود در نظر گرفت. DNA یک قطعه سخت افزاری همتاساز است. هر قطعه DNA ساختار ویژهی دارد که با قطعات رقیب آن تفاوت دارد. اگر میمهای مغز با ژن قابل مقایسهاند پس باید ساختارهای ذهنی خود تکثیری باشند. یعنی الگوهای واقعی از سیم های عصبی باشد که مدام خود را درون مغزها یکی بعد از دیگری دوباره میسازند. همیشه بیان این موضوع برای مشکل بوده زیرا اطلاعات ما در مورد مغز بسیار کمتر از اطلاعاتمان در مورد ژن است و بنابراین تصور مبهمی از ساختار آن داریم. و همین دلیل نوشته بسیار جالبی که اخیراً از جوان دلویس از دانشگاه کنستاز آلمان دریافت کردم. برایم آرامش بخش بود. برخلاف من که متخصص مغز نیستم دلویس لازم نیست عذرخواهی کنه زیرا او دانشمند برجسته ای در علوم مربوط به مغز است. این بود که وقتی دیدم او این شجاعت را دارد که با ارائه تصاویر دقیقی از سخت افزار عصبی میم شکل آن را نشان دهد. بسیار آسوده خاطر شدم. یکی دیگر از کارهای جالب او بررسی قیاس میم با انگل یا دقیق تر بگوییم با پیوستاری است که یک سرش انگل بدخیم و سر دیگرش همزیستان خوشخیم است و در این کار بسیار بیشتر از من تحقیق کرده است. من به این روی کرد به خاطر اثر رخنمون گسترش یه ژن انگل بر رفتار میزبان که موضوع مورد علاقه من است ارادت خاصی دارم. ی فصل سیزده این کتاب و فصل 12 رخنمون گسترش یافته را ببینید در ضمن دلویس روی جدایی آشکار میم ها از اثر فنوتیپیشان تأکید می میکند و مکررا اهمیت مجموعه میمی همسازگار را که در آن میم ها به خاطر سازگاری متقابلشان برگزیده میشوند یادآور می شود. توضیح درباره اولد لانگسین این سرود را انتخاب کردم چون برایم نمونه خوب روشنگری بود به این دلیل که تقریبا در همه دنیا آن را یک اشتباه، یک تصحیف خانده اند آن امروز ناچار این است For the sake of all long scene, در حالی که نوشته واقعی برونز for all long بود یک ذهن داروینی فورا به این فکر میافتد که ارزش بقای آن عبارت اضافه شده د دسه در چیست؟ البته منظوری نیست که ببینیم آدمهایی که این آهنگ تغییریافته را می خوانند چگونه بهتر زنده می مانند می خواهیم بدانیم چگونه خود این تغییر توانسته بقای خوبی در خزانه میمی داشته باشد همین سلوط در کودکی یاد می گیرند ولی نه از روی خواندن نوشته های برنز بلکه با شنیدن آن در شب سال نو شاید زمانی همان را درست می خاندند. پردسه باید در اثر یک جهش نادر پیدا شده باشد. حالا سوال ما این است که چرا جهشی که در ابتدا نادر بوده بی سر و صدا به قدری زیاد شده که حالا در خزانه میمی عادی به حساب می فکر نمی پاسخ چندان دور از دست باشد. صدای سوت مانند S بسیار تیز است. گروه هم خانان کلیسا تمرین می کنند که صدای اسراحت دل امکان آرام تلفظ کنند چون در غیر این صورت کل کلیسا صدا را بر می گردند. گاهی صدای زمزمی کشیشی در مهراب یک کلیسای بزرگ از دور به صورت صدای اسهای برجسته گریخته به گوش می رسد صدای سامت دیگر در واژه سیک صدای کی است که تقریبا همان تیزی را دارد مجسم کنید 12 نفر دارند، صورت درست آن for allowed long sake را می خانند. و یک نفر در آنجا آن را به صورت اشتباه for the sake of allowed long sake می خاند. بچه که برای بار اولین آهنگ را می دوست دارد با آنها بخواند. ولی باجه ها را درست تشخیص ده گرچه همه میگویند گوین لانگسینگ long ولی صدای سفیر مانند S و صدای انصداد کی به گوش آن بچه راه می آبد. مهم جهش یافته از یک وسیله نقلیه دیگر سرقت می گیرد. اگر بچه های دیگر آنجا باشند یا بزرگترهایی که به طور دقیق متوجه نمیشوند چه واژه گفته می شود، زمان خواندن ترجیح بند بعدی بیشتر صورت تغییر را میگیرند. البته به این معنی نیست که صورت جهش یافته را ترجیح می آنها واقعا کلمات آن سرود را نمی و نمیخواهند آن را یاد بگیرند. گرچه آنهایی که مثل من، شکل درست را می از ته گلو for all لانگ sea را تکرار می کنن. ولی این عبارت هیچ سامت چشمگیری ندارد و صورت تغییر آن حتی اگر آهسته و با تردید خوانده شود بهتر به گوش می رسد یک مورد مشابه رول بریتانیا است صورت صحیح سطر دوم این سرود کور بریتانیا رولد ویو است این تکه اغلب ولی نه در همه جای دنیا به صورت بریتانیا رولد ویوز خوانده می در اینجا یک عامل اضافی صدای سفیر اس این میم را تقویت می‌کند. شاید معنای مورد نظر شاعر آن جیمز تامسون فعل امر بوده است. بریتانیا بیرون آیی و بر امواج حکم بران یا شاید التزامی بوده. بگذارید بریتانیا بر امواج حکم براند اما ظاهرا این است که جمله را اشتباه اخباری در نظر بگیریم. بریتانیا بر انبعز هوک میراند. در این میم جهش یافته دو ارزش بقای جداگانه می بینیم نسبت به آن صورت اصلی، آوای آن بهتر به گوش می رسد و فهمیدنش راحتتر است. آخرین آزمون یک فرضیه باید به صورت تجربی باشد. باید این امکان وجود داشته باشد که عمدن آن میم سفیری را با بسامدی پایین درون یک خزانه میمی تزریق کرد و سپس به خاطر ارزش بقایی که دارد شاهد انتشارش بود اگر چند نفر از ما شروع کنیم به خواندن Gracious God Save Our Queen چه می شود؟ زیرنویس، صورت صحیح آن God save our gracious queen توضیح عبارت بعدی عبارت اینه اگر آن میم یک نظر علمی باشد انتشار آن بسته به این است که تا چه حد برای تک تک دانشمندان قابل پذیرش باشد یک سنجش تقریبی از میزان بقای آن را شاید بتوان با شمارش تعداد دفعاتی که در شماره های متوالی مجله علمی و آن مراجعه شده است، به دست آورد. توضیح؟ امیدوارم از این عبارت اینطور برداشت نشود که جالب بودن تنها معیار پذیرش یک نظر علمی است. در واقع بعضی نظرهای علمی درست و بعضی نادرستند. درستی آنها را میتوان آزمو، منطقانها را میتوان به دقت مورد بررسی قرار داد. مثل آهنگای پاپ، آین یا مدل های مویی که پانکی نیستند. با وجود این، در علم علاوه بر منطق نوعی جامعه شناسی هم وجود دارد. بعضی نظرهای علمی بد ممکن است دست کم تا مدتی رواج پیدا کنند و بعضی نظرهای خوب علمی ممکن است سالها به صورت غیرفعال وجود داشته باشد تا بالاخره زمانی مورد توجه قرار گیرند و ذهنها را اشغال کنند. یک نمونه بارز از آنها را که مدتی نهفته بودند و بعد وارد دوران شکوفایی شدند در یکی از نظریه‌های مهم این کتاب می‌بینیم. در نظریه انتخاب خویشاوندی همیلتون تصور من این بود که این نظریه برای اندازگیری انتشار میم از روی تعداد ارجاب آن در مجلها مورد مناسبی است. در ویرایش اول صفحه 90 اشاره کردم به اینکه دو مقاله 1964 او در ردیف با ارزشتری نوشته ها در رفتارشناسی اجتماعی است و من نمی دانم چرا این مقاله تا این حد مرد بیمهدی رفتارشناسان قرار گرفته است. حتی در نمایه دو کتاب درسی اصلی رفتارشناسی که هر دو در 1970 چاپ شده از اسم او خبری نیست. خوشبختانه اخیرن نشانه هایی از توجه به نظرهای او ملاحظه می شود. من این را در سال 1970 نوشته بودم. یه رد توجه به این میم را در سالهایی بعد پی بگیریم. نمایه استنادهای علمی نشریه نسبتاً غیر است که در آن آدم میتواند دنبال هر مقاله منتشر شده بگردد و فهرست نوشته های بعدی را که در فلان سال با آن استناد کرده اند ببیند. هدف این نشریه این است که در مورد هر موضوع لیستی از کارهای قبلی به دست میدهد. گروه های کارگزینی دانشگاه اغلب از آن به عنوان یک وسیله تقریبی و سردستی بیش از اندازی تقریبی و سردستی است برای مقایسه دستاوردهای علمی متقاضیان کار استفاده کنند با شمردن تعداد استنادها که بعد از 1964 به مقاله همیلتون شده میتوانیم توانیم پیشروی نظر او را در آگاهی زیست شناسان به صورت تقریبی ردگیری کنیم غیر فعال بودن اولیه آن کاملا معلوم است و طوریست که گویی در سالهای هفتاد خیزش چشمگیری در توجه به انتخاب خیشاوند دیده می شود. اگر بخواهیم نقطه ای را مبدع این حرکت روبه بالا در نظر بگیریم باید جایی بین سالهای 1973 و 1974 باشد. این حرکت روبه بالا در 1981 به اوج می رسد و بعد از آن میزان استناد سالانه به طور نامنظمی در یک ست کم و زیاد می شود یک افسانه میمی شایع شده بود که افسایش ناگهانی علاقه به موضوعات انتخاب خیشاوند را کتاب های منتشر شده در 1975 و 1976 ایجاد کردند این نمودار با نقطه خیزشی که در 1974 دارد، واقعیتی را رو می کند که عکس این نظر است. برعکس از این شواهد می برای تعیید یک فرضیهی که بسیار متفاوت است استفاده کرد. مثلا اینکه ما با یکی از آن نظرهایی سر سرکار داریم که وقتی زمانش رسیده بود در هوا بود. بر این اساس، آن کتابهای عواسط دهی هفتاد حاکی از جار و جنجال، درباره آن نظر هستند نه اینکه مسبب اصلی پیدا شدن آن باشند شاید ما در واقع با یک حیاهوی دراز مدتتری که در ابتدا پیشرفت کندی داشته و سپس افزایش تصاعدی پیدا کرده سر و کار داریم ماجرا که از خیلی قبل شروع شده است یک راه برای امتحان این فرضیه ساده تساعدی این است که این استنادها را به صورت انباشتی در درجه بندی لگاریتمی قرار دهیم. هر فرایند رشدی که در آن سرعت رشد مناسب باشد با میزان که قبل از آن بوده رشد تصاعدی نامیده می شود. یک فرایند تصاعدی نوعی فرایند همهگیر است. یعنی هر کس ویروس را به چند نفر دیگر منتقل می کند، و هر کدام آنها باز آن را به همان تعداد از افراد منتقل می کنند. به این ترتیب تعداد افراد مبتلا به سرعت زیاد می شود نشانه های تشخیصی یک منحنی تصاعدی این است که وقتی در مقیاس لگاریتمی قرار گیرد به صورت یک خط راست می گرچه ضروری نیست ولی راحت تر و معبولی این است که نمودارها را انباشتی ترسیم کرد اگر انتشار میم همیلتون واقعا مثل یک چیز مصری همگیر باشد همه نقاط روی یک نمودار لگاریتمی انباشتی باید روی یک خط راست قرار گیرند آیا چنین است؟ اش شکل در ترجمه فارسی کتاب نیامده ولی نوشتن آن خطی که در شکل دو کشیده شده خط مستقیمی است که از نظر آماری همه نقاط را در بر می‌گیرد خیزش تند بین سالهای 1966 و 1967 را احتمالاً باید اثر بی اهمیت اعداد کوچک است که در ترسیم لوگاریتمی خود را بیشتر نشان می دهد. از آن به بعد دیگر نمودار یک خط تقریباً مستقیم است گرچه الگوهای روی هم قرار گرفته در آن قابل تشخیص است. اگر تفسیر تصاعدی من مرد قبول باشد ما تنها با یک توجه انتجاری کنسوز رو که از 1967 تا اواخر دهه 80 در جریان بوده است. هر کتاب یا مقاله را میتوان هم نشانه و هم سبب این روند دراز مدت در نظر گرفت. ضمنان این الگوی افسایش را از این نظر که اجتناب ناپذیر است نباید کم اهمیت بدانیم. البته در الگوی همباشتی سعودی است. حتی اگر میزان استناتا در سال ثابت باشد. اما در درجه بندی لگاریتمی سرعت بالو رفتن آن همواره کمتر می شود. به تدریج افت می کند. خط پررنگ در بالای شکل سه نمودار فرضی را نشان می دهد که اگر میزان سالانه استناتا ثابت بود پیدا می شد. تو پرانتز که برابر است با میانگین میزان واقعی استناتا به همیلتون حدود سی و تا در سال پرنتز بسته این منحنی به تدریج محف شونده را می توان با خط راستی که در شکل دو دیده می شود مقایسه کرد آن خط میزان تصاعدی افزایش را نشان می دهد. در واقع موردی است از افزایش روی افزایش نه میزان یک نواختی از استنادها سانیان ممکن است به این فکر بیفتیم که چیزی نه حتما اش ولی دست کم تا حدی قابل پیش بینی در افزایش تساودی وجود داشته باشد آیا کل میزان انتشار مقاله های علمی و به طبع آن فرصت استناد به های دیگر خودش به صورت تساودی رو به افزایش نیست راحت تنین راه برای نشان دادن وضعیت خاص این است که همان نمودار را برای مقاله های دیگر هم رسم کنیم در شکل سه بسامد استنادها انباشت لگاریتمی سه نوشته دیگر را که از غذا روی ویرایش نخست این کتاب اثر گذار بودن میبینیم. آن سه عبارتند از کتاب 1966 ویلیامز سازگاری و انتخاب طبیعی، مقاله 1971 که تریورز درباره باری ایسارگری دو جانبه و مقاله 1973 مینارد سمید و پرایس که مفهوم ESS را مطرح کردند. این هر سه نشان میدهند که در کل طول زمان تصاعدی نیستند. اما در این کارها هم میزان استناد سالانه ثابت نیست. و است در بخشی از طیف خود تصاعدی باشد. برای مثال منهنی ویلیامز از 1970 به بعد یا درجه بندی لوگاریتمی تقریبا خط راست است باقی از این است که آن هم یک مرحلی تأثیر گذاری شدید را داشته است. من تأثیر بعضی کتاب ها در انتشار میم همیلتون را ندیده گرفتم. با وجود این میخواهم به این تحلیل میمی پانوشتی اضافه کنم. و آن این است که مثل مورد الاد لانگسین و رول بریتانیا یک جهش اشتباهی داریم که را روشن می کند. عنوان اصلی جفت مقالی 1964 همیلتون تکامل ژنی رفتار اجتماعی است از عواسر تا اواخر دهه هفتاد در سیل انتشاراتی که زیستشناسی اجتماعی و ژن خودخواه هم میان آنها بود به اشتباه به عنوان نظریه ژنی رفتار اجتماعی مورد استناد قرار گرفت چانسگر و پول هاروی سعی کردن پیدا کنند در کجا اولین بار این مم جهش یافت با این تصور که مثل یک برچسب فسفوری نشانه خوبی پیدا میشود برای ردگیری تاثیر علمی رد آن را تا کتاب پرلوفوز ااو ویلسون زیستشناسی اجتماعی دنبال کردند و حتی به تعدادی شواهد زمینی هم برای این شجر نام دست یافتند من شاکر ویلسون را تحسین میکنم دلم میخواهد مردم بیشتر خود آن کتاب و کمتر نوشتههای دربارهٔ آن را بخوانند ولی همیشه از اینکه کتابم تحت تأثیر نظر نادرست این کتاب قرار گرفته ناراحت میشوم اما از آنجا که کتاب من هم آن استناد جهش یافته آن برچسب فسفری را داشت به نظر میرسید حداقل یک میم از ویلسون به من سرایت کرده است نباید زیاد تعجب کرد زیرا وقتی زیست شناسی اجتماعی به بریتانیا رسید که من ژن خودخواه را به پایان می رسندم. درست زمانی بود که روی کتاب شناسی آن کار می کردم. کتاب شناسی مفصل ویلسون برایم محبتی بود که ساعتها از کارم در کتابخانه خانه به این ترتیب تأصف من به خوشحالی بدل شد وقتی بر حسب تصادف همان کتاب شناسی را دیدم که ضمن یک سخنرانی در آکسفورد تکثیر کرده و به دانشجویان داده بودم خودش بود نظریه ژنی رفتار اجتماعی پنج سال قبل از انتشار در کار ویلسون احتمالاً ویلسون کتابشناسی 1970 مرا ندیده بود شکی در این نیست من و ویلسون جدا از هم هر دو ممه جهش یافته یکسانی را مطرح کرده بودیم چطور ممکن بود چنین اتفاقی رخ دهد ده مثل مورد آلود یک بار دیگر میتوان توضیح قابل قبولی برای آن پیدا کرد. نام معروفترین کتاب آر ای فیشر نظریه ژنی انتخاب طبیعی است. این اسم انقدر در دنیای زیست شناسی تکاملی پرکاربرد است که باید از دو کلمه اولان را بشنویم و خود به خود سومی را با آن اضافه نکنیم. شک ندارم من و بیلسون هر دو چنین کرده ایم. این پایان خوش است برای همه آنها که در گیر این قضیه هم. زیرا هیچ کس از اعتراف به اینکه از فیشر تأثیر پذیرفت عبایی ندارد. توضیح عبارت کامپیوتری که میمها دران زندگی میکنند کنند مغز بشر است. کاملا قابل بینی بود که سرانجام کامپیوترهای الکترونیکی هم میزبان الگوهای میم اطلاعی خود تکثیر خواهند شد کامپیوترها در شبکها پیچیده از اطلاعات مشترک به هم مرتبطند. بسیاری از آنها از بدبستان پیام پیامهای الکترونیکی واقعا به یکدیگر وصل میشوند و بعضی دیگر وقتی صاحبانشان فلاپی دیزکاشان را رد و بدل میکنند اطلاعاتشان را با هم به شراکت میگذارند این وضع شرایط فرهنگی اجتماعی تمام و کمالی است برای شکوفا شدن و انتشار برنامه های خود وقتی من چاپ اول این کتاب رو می نوشتم از روی ناپختگی فرض می کردم یک اشتباه بی اختیار در نسخه برداری از یک برنامه ریزی درست باعث پیدا شدن میمه کامپیوتری ناخواسته می شود و فکر می کردم چنین رویدادی نامحتمل باشد. متاسفانه آن زمان ما ساده دلتر بودیم. حالا همه که با کامپیوتر سر و کار دارم، با دردسرهای سرایت ویروس و کرمهایی که بعضی برنامه های بددل راه میاندازند آشنا هستند سال گذشته هاردیسک خودم باعث آلوده شدن اطلاعاتم به دو ویروس مختلف شد که برای کاربران کامپیوتر اتفاق نسبتا رایجی است ها را نام نمیبرم زیرا ممکن است برای افراد پست و حقیری که در بهراه انداختن آنها دست داشتهاند رضایت خاطری حقیر و پست به همراه داشته باشد میگویم پست زیرا از نظر اخلاقی رفتار چنین افرادی تفاوتی ندارد با رفتار یک تکنیسین که در یک آزمایشگاه میکروبیولوژی عمدن آب نوشیدنی را به یک بیماری مسری آلوده میکند و به ریش همه مبتلایان میخندد میگویم حقیر زیرا این افراد از نظر ذهنی کوچکند تراحی یک ویروس کامپیوتری به هوش خاصی نیاز ندارد. هر برنامه نویس متوسطی آن را انجام دهد. و در دنیای امروز چه فراوانند برنامه نویسان متوسط؟ خود من یکی از آنها هستم. حتی لازم نیست چگونگی کار ویروس کامپیوتر همان را توضیح دهم، همه آن را میدانم. آسانتر از نوشتن برنامه ویروس مبارزه با آن است. متاسفانه برنامه نویسان ماهر وقت گرانبهای خود را سرف نوشتن برنامههای ویروسیاب ضد ویروس و مانند اینها میکنند بیش باید به واکسن زدن ما نیست گاهی یک ویروس ضعیف شده می میشود خطر در این است که ممکن است جنگ تسلیحاتی شروع شود با هر پیشروی در مقابل ویروسها یک پیشروی در برنامه های ضد ویروسی پیدا می شود. تا کنون بیشتر برنامه های ضد ویروس را افراد نو دوست نوشته و به رایگان در اختیار دیگران گذاشتهاند اما پیشبینی من این است که این کار برای خیلی ها راه پول درآوردن شود. درست مثل حرفه های دیگر به تخصصهای منفعت زایی تقسیم شود. مثلا دکتر نرمافزار با کیف سیاهی پر از دیسک و فلاپی های درمانگر منتظر تلفن ما باشد. گرچه من نفذ دکتر را به کار بردم ولی پزشک واقعی مشکلات را حل می کنند که به طور طبیعی پیش می آید. نه مشکلاتی که به عمده و از روی بدتینتی ایجاد شده باشد دکتران نرمفصاری مثل وکیل ها هستند مشکلاتی را حل می کنند که خود انسان به وجود آورده مشکلاتی که اصلا نباید وجود داشته باشد تا آنجا که می شود انگیزه ویروس سازان را حد زد آنها کم و بیش آشوب طلبند درخواست من از آنها این است. آیا واقعا میخواهید برای یک کار پولساز راه باز کنید؟ اگر نه دست از بازی با میمهای احمقانه بردارید و استعداد برنامه رزیتان را در راه بهتری خرج کنید توضیح عبارت بعدی اعتماد کورکورانه همه چیز را توجیح می کند نماهای زیادی که از قربانیان اعتماد به دستم رسید دور از انتظار نبود در آنها به انتقاد من از آن اعتراض شده بود پایبندی چنان می تواند به نفع خود مغز خوصا مغز بچه ها را شستشو دهد که از بین بردن اثر آن راحت نیست ولی اصلا پایبندی چیست؟ حالتی است در ذهن که سبب می شود مردم چیزی را مهم نیست آن چه باشد علا رغم وجود نداشتن گواهی برای اثبات آن باور داشته باشند اگر شواهدی دال بر تأیید وجود داشته باشد دیگران اعتماد ظاهری است زیرا ما به خاطر وجود آن شواهد پایبند شده‌ایم به همین دلیل این عبارت توتیوار که خود تکامل نوعی اعتماد است بسیار بی‌معنا نماید. کسانی که تکامل را باور دارند به خاطر وجود شواهد زیادی است که آن را تأیید می کند، نه به این خاطر که به عمد خواستند چنین باوری را داشته باشند گفتم مهم نیست آن چیز آن باور چه باشد یعنی مردم ممکن است به چیزهای کاملا دل بخواه و بی ربط مثلا به راهب الکترونیکی در کتاب جالب داگلاس آدامز به نام کارگاهی کاراگاهی همه جانبی دیک جنتلی اعتماد داشته باشند او را به عمد برای امور اعتقادی ساختند و او در کارش موفق است روزی که به دیدنش می رویم، او با اطمینان کامل و علامرقم همه شواهد بر این باور است که همه جهان شاد و سالم است. منظورم این نیست که همه چیزهایی که مورد اعتماد مردم حتما حتماً بی ربطند. ممکن است اینطور باشد یا نباشد. مسئله این است که میزانی برای سنجش برتری یکی بر دیگری در دسترس نیست چون آشکارا از شواهد اجتناب می‌شود. در واقع اینکه باور واقعی دلیل لازم ندارد را پارسایی دانستند منظور من از اشاره به داستان توماس شکاک تنها فرد پسندیده در آن دوازده پیرو همین بود ایمان نمیتواند ها را به حرکت درآورد گرچه به نسلها از کودکان عکس این را گفتند و آنها باور کردند ولی میتواند مردم را چنان به سمت بیخردی خطرناک سوق دهد میتوان آن را نوعی بیماری ذهنی دانست باور چنان افراد را به خود پای بند می که در موارد افراطی حاضرا بمیرند و بکشند بدون اینکه نیازی به توجیه کارشان حس کنند که برای کسانی که چنان جبگیریه که میم شدهاند که بقای خود برایشان بی اهمیت شده از عبارت مییمزادگان استفاده میکند. در اخبار شب، خیلی از افراد را در جاهایی مثل بلفاست و بیروت می بینیم. باور این توان را دارد که معمنی برای همه نیازهای بشر به محبت، بخشش و احساسات موجه باشد. حتی اگر واقعا باور این باشد که مردن در راه هدف فرد را به مکان آرمانی می رساند، از آن هم نمی حرسند. این چه سلاحی است؟ لازم است فصلی به باورهای دینی و ابزارهای جنگی اختصاص یابد به رویارویی باور با منجنی، اسب جنگی، تانک و بمب هیدروژنی توضیح در باب عبارت در مقابل خودکامگی این همتا سازان خودخواه بیستیم. توضیح این لهن خوشبینانه من در انتهای کتاب برای بعضی منتقدان این تصور رو ایجاد کرده که نتیجه کتاب با بقیه آن هماهنگی ندارد این انتقاد در بعضی موارد از سوی آن گروه عزیز شناسان اجتماعی است که به هیچ وجه نمیخواهند از اهمیت اثر ژن کوتاه بیایند و در موارد دیگر از طرف آلمان چپ عالی رتبه است که به شدت حافظ یک نماد شیطان پرستانه محبوبند روز کامین و لبنتین در کتاب ندر جنهای یک چیز ترساوری برای خود دارند به نام تقلیل گرایی. و از قرار معلوم همه تقلیل گراهای خوب باید حتمی باشند ترزیحن حتمی ژنی جنی برای گرایان مغز یک چیز زیست ثابت است که کیفیت آن رفتارهای قابل مشاهده و حالتهای فکری یا برداشت ما از آن رفتارها را به وجود می آورد. چنین دیدگاهی با اصول زیست شناسی اجتماعی مطرح شده از سوی ویلسون و داکینز کاملا سازگار است یا باید باشد اما این نگرش آنها را بر سر این دوراهی قرار میدهد که ابتدا در مورد ذاتی بودن بیشتر رفتارهای بشر بحث کنند و چون آزاداندیشند این برایشان ناخوشایند است کینه ورزی، مغزشویی و مانند اینها و سپس خود را درگیر موضوعات اخلاقی در مورد مسئولیت اعمال مجرمانه کنند اگر اینها هم مثل اعمال دیگر ذاتی باشند برای احتراز این مشکل ویلسون و داکینز صحبت از اراده آزادی را به میان میکشند که به ما توان مقابله در برابر دستورات ژن را میدهد و اگر بخواهیم این در واقع بازگشتی است به فلسفه دکارتی سنویت خدا و ماشین من فکر میکنم روز و همکارانش ما را به این متهم میکنن که آش خورده ایم و دهان ما نسوخته است یعنی ما یا باید حتمی گرای جنی باشیم یا اراده آزاد را داشته باشیم نمیشود هم خر را داشت و هم خورما را اما من در اینجا از طرف خودم و پروفسور ویلسون میگویم فقط از نظر روز و همکارانش ما حتمیت گرای جنی به حساب می آییم. چیزی که از نظر آنها دور مانده ظاهرا چنین است گرچه قبولش آسان نیست. این است که گرچه ما کاملا قبول داریم که جنها از نظر آماری روی رفتار بشر تأثیر دارند. ولی در این حال بر این باوریم که می توان این تأثیر را با اثر های دیگر تعدیل برطرف یا برعکس نمود. جن باید روی هر الگوی رفتاری که از طریق انتخاب طبیعی پیدا می شود یک تأثیر آماری داشته باشد با فرض اینکه رز روز و همکارانش قبول دارند که میل جنسی بشر را انتخاب طبیعی ایجاد کرده است و همان مفهومی که همه چیزهای دیگر را انتخاب طبیعی ایجاد کرده است پس باید قبول داشته باشند که بعضی جنها روی میل جنسی اثر می گذارند. به همان مفهومی که جنها همیشه روی چیزهای دیگر اثر میگذارند اما احتمالاً آنها در اینکه گاهی از نظر اجتماعی لازم است میل جنسی مهار شود مشکلی ندارند آیا دوگانگی در این قضیه هست معلوم است که نیست من هم در اینکه بخواهم در مقابل خود کامگی ژن ایستم هیچ دوگانگی نمیبینم ما یعنی مغز ما آنقدر جدا و مستقل از ژنهامان است من که بتواند به آنها مقابله کند چونان که قبلا هم گفتم هر بار که ما به طریقی مانع بارداری میشویم در مقابل جنه های ما نیستاده ایم دلیلی ندارد که نتوانیم در مقیاسی وسیعتر این کار را انجام دهیم پایان